خب شب آخر بحث این ایام ما با توجه به این حدیث شریف که در پیش گرفتیم هم جمبندی کنیم و نتیجه بگیریم و ادامه بحث امشب در ارتباط با خلاصه بحث گذشته مشخص بشه خلاصه حرف این شد که با توجه به این فرموده حضرت زهرا سلام علیه ها از آیات بسیاری از قرآن کریم و روایات متعددی از معصومین علیهم السلام شاهد و بهره بردیم این شد که انسان با عنوان برترین مخلوق و موجود الهی از نظر خلقت و تکوین امکاناتی دارد که این امکانات وجودی هبه الهیست انایت الهیست در حق این بنده اگر انسان عقل دارد حیوان عقل ندارد نه انسان کاری کرده است که مستحق شده است که عقل پیدا کند نه این تکوینه این خلقت خدا اراده فرموده است که این موجود را در این سطح و در این رتبه وجودی قرار دهد حال به اقتضای این رتبه و امکانات که به این وجود داده تکالیفی برای او معین ساخته که این تکالیف اگر اون امکانات نبود برای او وضع نمیشد. مثلا اگر در خود انسان ها انسانی به شرایطی از قوامل موجودیت مشکلات دوران بارداری مادر یا قضایای خاص بیماری پدر و مادر و ها کذا این فرزند ناقص العضو به دنیا آمد به گونه ای که فرض کنید اصلا امکان تفکر و تعقل ندارد سفیه است دیوانه است آیا اون تکالیفی که در سیر سعودی برای انسان سال معیم شده یک عادل موظف است اون تکامل و تعالی را پیدا کند این وجودم موظف است نه چرا؟ چون اون امکانات رو نداره به اقتضای اون امکانی که خدا به ما داده ما می توانیم در تکامل و تعالی این نکته مورد بحث بود به گونه ای حرکت کنیم که انایت خاص پروردگار را بطلبیم و بگیریم نه اینکه خداوند از افاظه فیض خودداری میکند از عنایت و رحمت باز می ایستد نه خود او اینگونه مقرر کرده که عنایات خاصه و رحمت ویژه او نرسد مگر به کسانی که در مسیر جلب این انایت خاصه و اون رحمت ویژه حرکت کنند، تلاش کنند و سبور و ثابت قدم باشن این اصل هم مخصوصاً مطره گاهی حرکت میکنن ولی بین را راها میکنن گاهی در مرحله اقدام توجه دارند. اما پس قدم کما عمر مطرح نمیشه ان الذين قالوا ربنا الله رو میگن ولی سم استقامو فراموش میشه حالا حضرت زهرا سلام الله علیها همه این بحث ها را در این عنوان خلاصه فرمودند از شما عبودیت خالص از پروردگار عنایت بهترین مصلحت شما مسلحت شما چیست حالا فرصتی اینکه که سلاح چیه مسلحت چیه افضل مسلحت چیه اینا رو هیچ من بحث نکده اصلا فرصتی حرفا نشد حالا اگر خدا به و عمری باشه و شاء امیدواریم امیدواریم فاطمیه ی آینده بعد از ظهور حضرت باشه و در محضر حضرت جلسات حضرت زهرا برپا بشه ما به این امید زنده ایم کلن اما حالا اگر بنا شد یه مناسبت دیگری برای حضرت زهرا سلام الله ها صحبت کنیم اون بحث حالا مصلحت و افضل مصلحت هم جای بحث داره ولی یه وقت شاید بحث بشه اونو کاری ندارم ولی خلاصه اینه ما باید بنده بش، باید عبد باشیم باید در مسیر و عبودیت خلوص در عبادت رو پیدا کنیم خداوند انایتش رو به تعبیر حضرت افضل مصلحت برای ما مقرر می‌فرمازد آیایش در قرآن کریم در خصو... آیاتیش در قرآن کریم در خصوص سعی و تلاش ما که من دو تا آیه رو به عنوان شاهد آوردم یا سه تا آیه رو که سعی ما در دو بود از عباد تکاملی که امکانش رو خدا به ما داده در دو بود از ابعاد تکاملی که امکانش رو خدا به ما داده یک بود تکامل ملکی تکامل دنیوی تکامل حالا تعبیر تمدن مادی بگم ولی خدا این رو به ما داده یعنی شما میتونید از طریق صنعت به اون جایی برسید برق رو کشف کنید پنکه و کولر و دستگاه خنک کننده و میکروفون و اتومبیل و هواپیما و وسایل کشاورزی مکانیزه اینا رو بشر داره آیا شده که مثلا گورگها، ها،, ها این قدرت رو داشته باشن، تلاشی بکنن، سعی بکنن، ابزاری بسازن. من وقتی میخوام یه گوسفند رو بدرم یه ببر، یه پلنگ، یه گرگ کمین کنم، نیرو صرف کنم، با چنگال و دندان، یه اسلحه، یه بمبی، یه چیزی بندازم، 20 سی تا گوسفند یه دفعه اونجا بمیره، بعدم فریجی درست کنم اینا رو بذارم و راحت بیام کم, -کم شروع کنم به خوردن. خب این تکامل مادیه. تکامل این برای حیوان مطرح نیست امکانش هم نداره ولی برای انسان مطرحه انسانی که این امکان رو داره یعنی این قدرت رو به خدا بهش داده آیا از اول اگر خدا میخواست بشر این تکامل علمی به معنی ملکی که شما داری به مرور پیدا میکنیم میای جلو از اول آماده شده کامل شده رو بهت بدم میتونست یا نمیتونست ولی انسانی نیست لازمه شیر تکاملی اینه میگه امکانشو میدم هدایت هم میکنم خیلی لطف داره پروردگار عالم هم قدرت بت میدم قوه میدم امکانات بد میدم هدایت و راهنمایی هم میکنم ولی حرکتی بكن گفتن یه بنده خدایی چله گرفته بود در مسجد کوفه اطراف مسجد کوفه اونایی که مشرف شدن انشاءالله با معرفت بیشتر بازم مشرف بشن. اونایی هم که مشرف نشدن امیدوارم با انایات از زهره سلام مللیه ها همین امشب مشمول این شرفیابیه با اون اماکن مقدسه بشن الله. خب مسجد کوفه دیدید مثل مسجد الحرام یه فضای بزرگ سرباز داره. فضا آسمان نداره سخت بازه. یه قسمتی هم اطراف فضای مسقف داره. هجره, هجره هم تو مسجد کوفه قدیم ها بود که الان هم هنوز بعضی آثارش هست که بعضی اهل چله و بعضی مثلا عبادات خاص بودن تو این هجرات بیتوته می کردن. یا تو مسجد سهله همچنین یه بنده خدایی رفته بود چله گرفته بود توی این یکی از این هجرات مشغول راز و نیاز و عبادت خودش بود من جمله می گفت من میخوام که هیچ اقدامی برای تمام در این مدت نکنم خدا غذا رو خودش برای من برسونه روز اول گذشت خبری نشون روز دوم خبری نشون گرستنگی سخت شارا بر خدایا مگه تو روزی غذا نیستی مگه تو رازق نیستی من میخوام در این سیر و سلوک متوجه این مطلب بشم در سومادم متوجه این مطلب بشم که میرسونی یا این که منم باید کاری بکنم یه دیگه بزرگ قضایی بعدی خیر کردن آوردن پشت این حجره تو این عیبونه هی میگن که شیعان بندگان خدا به عشق مولا بیاید از این قضا بخورید مردم هم میامدن ظرف زرف میکشید به اینها میداد این هرچی تو حجره منتظر مند یکی در میزنه که آقا بیا این بشخوابم تو بگیر دید خبر اینش حالا گرستنگی هم به شدت فشار آورده دیگه طوانش هم داره تموم میشه از اون طرف هم میخواد ببینی که راز چیه تو عالم میخواد راز رو هم بفهمه. معروف این قضیه. گفت دیدیم که دیگه تین کفگیر به تهدید رسید. طرفم صدا میکنه کی غذا نخورده بیاد که دیگه در تموم میشه. اون من یه سرفه ای کردم توی اتاقه. یکی گروهسیین تو هم کسیه. در درآوا کردم که من هستم یه ذرد کشیدن به من داده. بعد که چلش تموم شد گفت چه فهمیدی. گفت خدا روزی میرسونه ولی یه صرف هم میخواد حالا یه هم میخواد این مزاحه، ولی مزامین آیات و روایات اینه خدا انایت میکنه خدا دستگیری میکنه خدا رحمتشو شامل حال من و شما میکنه ولی از من و شما عبودیت میخواد از من و شما سعی میخواد هم در تکامل ملکی میگه عزیز من بیا تو عالم ملک مثلا میخوای پزشک قوی بشی میخوای یک مهندس صاحب نظر بشی میخوای یک صنعتگر ماهر بشی آزی من کار کن درس بخون برو زیر نظر استاد ببین استاد چی کار میکنه خوب در این زمینه کار کن بیا بالا در وعده معنوی میخوای یک رجل الهی بشی حالا خانما نگن چرا گفتم رجل یک فرد تکامل یافته الهی بشی اینکه لغت رو گفتم رجل عامه یک فرد تکامل یافته الهی بشی یک انسان رشد یافته در نرزبان ترقی بشی این دو بُعد گاهی با هم جمع میشه خوشا اونایی که دارن گاهی بعضی ها بُعد اولی رو دارن دومی رو ندارن بعضی ها بُعد دومی رو دارن بُعد اولی رو ندارن بعضی ها اولی رو خیلی قوی دومی رو یه مقداری بعضی ها دومی رو خیلی قوی اولی رو یه مقداری اما آیات قرآن و سیره معصومین این رو به ما یاد میده سعی برای هر دوتا لازمه حالا دقت بفرمایید در سوره نجم آیه 38 و 39 و سی و انسان الا ما یک این ما سعا راجب ملک یا ملکوت راجب ماده یا معنا راجب به بعد دنیاوی یا بعد اخروی اگر هیچی قرآن نگفته باشه آمه یا خاصه آمه وقتی عامه پس هر دو بعد در نظر میگیره و حال که قرآن اشاره به هر دوتا جداغانم میکنه کالای ارز میکنم اگر قرآن کریم چیزی هم نمیفرمود فقط میفرمود لیسه لیل انسان الا ما سعا خب لیل انسان برای انسان انسان فقط تکامل ملکی داره تکامل معنوی هم داره ملکوتی هم داره انسان فقط تکامل ملکوتی داره تکامل ملکی هم داره یعنی اون چرا که این انسان در مقام کمال و تعالی میتونه بش برسه لیس نیست براش الا با سعی که میکنه با تلاشی که میکنه البته در آیات دیگر یک به مثلا زوابط و شرائطی برای این سعی معین کرده یعنی سعی باید شرط داشته باشه سعی بی نیست. حالا ارز میکنم چیه اون در سوره نجم آیه سی لیسل الانسان الا ما سعا آیه سی و نوم و سوف یرا اون سعیش را به دید. نتیجه سعیش مفسرین در اینجا یه بحث خیلی زیبایی دارن میگن این که صوف یورا گفته شده است منظور چیه میگه تو تلاش تو بکن ممکنه الان در یک ظرف زمانی واقع شده باشی، در یک ظرف مکانی واقع شده نتیجه ای که این سعی باید به شما بده نده اشکالی نداره، خواهیدی، تو کارشو بکن مثلا، مخصوصا در مسائل معنوی خیلی مطرحه خیلی از بزرگان از اوتاد، 50 سال قبل شست سال قبل ست سال قبل. یک مثلا عبادات خاص مستحبی رو انجام می دادن. یه ریاضت های صحیحه شرعیه رو تحمل میکردند، نتایج نتائج عجیب و قریبی می گرفتن. یکی از شاگردان خاص، خاص مرحوم عاشق حسن علی نخودکی به خود بنده فرمود فرمود در محظر مرحوم عاشق بودم اون ذکری که اون میگفت و اثر خاص میبخشید و همون ذکر رو به ما با اجازه فرمود و ما میگفتیم نتیجه داشت ولی چندین ساله که هر چی میگیم هیچ نتیجه نداره این چیه؟ یا مثلا حرف میگه آقا استادم که ایمان دارم راست میگه دروغ نمیگفت. میگه من این چله رو گرفتم این نتیجه رو گرفتم. من این مثلا عبادت رو انجام دادم این اثر به من داده شد. این استادم گفته همون کار رو من میکنم نمیگیرم. با اون شرائطی هم که مثلا او گفته رعایت بکنید که همین شاگرد مرحوماش خسن علی میگفت یه چیزایی رو ما اون زمان داشتیم حس می بردیم در این رابطه یه روز به مون عاشخصنا گفتم آقا ما خیلی جواب نمیگیریم فرمود پرورش گل مشکل شده دیگه زمستون دیگه برای پرورش گل گل خونه میخواد. کاا متوجه یعنی چی؟ ببینید اینجا میخواد بگه خسته نشد تو کارتو بکن. اگر سعی لازم است تو سعی انجام بده. اگر فعلا یک شرایط زمانی، مکانی، برخی اوضاع مقدر الهی در عالم، مثلا مقدر شده در آخر زمان یه چیزای اقب جلو بشه این در روایات مثلا به عنوان مثال در محضر بزرگی از بزرگان بودم عرض کردن سریع قرآنه که میگه یهود بناس دلیل باشه ولی الان ما میبینیم سهیونیستا که قدرتی پیدا کردن تو دنیا و دارن ظلمم میکنن و حتی مسلمین رو دارن به ذلت میکشونن این آیه که میگه چیه اصلاً مشی آیات قرآن اینه که یهود بناس دلیل باشه میدونین چی جواب ده؟ گفت قرائن آیات و روایات برات میارم که در آخر زمان امر جور دیگه میشه این اون تحول آخر زمانیه حالا من در بحث عرض میکنم فعلا وارد این بحث نشم اگر شما بناس سعیتون رو بکنی گرچه الان نتیجه سعی تو نمیگیری بگه همه که دارم سعی میکنم خسته نشو ادامه بده و انس سعیهو سوف یرا نتیجهشو میبینه ولو حالا فعلا اینجا بنابه جهتی مشخص نشه این مطلق سعیه در سوره استقراء آیه 19 و من اراد الاخره اینجا مقید کرد در محدوده اخروی، مسائل معنوی و جهانی ماورای این جهان ماده و من اراده آخره و سعا لها ها که این سعیه های بعدیش خیلی عجیبه کسی که اراده کرده آخرت رو آخرت رو میخواد و سعا لها حابر میگذه به آخرت و سعی میکنه برای آخرت سعی کنه برای آخرت سعی‌ها سعی که لازمه آخرته سعی ها یعنی ما هم چی تو ورسی میکنیم بگیم میگه آقا درس داره میکنه درس خوندن ها نه اینکه ما یادمونه تو دویرستان میرفتیم گاهی رفقا با هم شوخی میکردیم آقا این کتابو چقدر دور کردی دوره کردی یکی از رفقا یه روز اومد گفت آقا من امروز صبح تا الان پنجاه دور زدم کتابو من خودم یادم تو دویرستان خودمو عصب گفتم میشه چی داری میگی؟ درد زیر خنده گفت کتاب دورش گشتم پنجه دور زدم دیگه حالا این سعی علمی که نیست شوخی این مزاه. من اراد الاخره و سعالها سعیها کسی که اراده آخرت میکنه سعی کنه و سعی که برای آخرت لازم است و هو مؤمن اینجا ش... دوتا شرط معین کرد اگه اراده آخرت کرده سعی بکنه سعی که در خور آخرت هست دوم مؤمنم باشه با قید ایمان فا که کان سعی مشکورا اینا کسانی هستند که این سعیشون در خوره توجهه این سعی ارزش داره این سعی رو میشه روش حساب کرد خب مخصوصا این قیدی که دیشورش کردم اجازه بدید بازی اشاره کنم بد برداشت نشه ما مشکل افراط و تفریط رو در هر امری داریم در هر امری باید اعتدال و اون امر صحیح نه اینوری تنروی نه انروی کندروی رو توجه داشته باشیم سعی میخواد مقرور به سعی بشین پدرمون در میاره داغونمون میکنه گاهی چی به سعیت نازیدی حالا به نشون میده از اون طرف سعی نمیکنم بین جبر و بین تفویض به بی این معنی البته تفویض دو معنی داره یکی لا جبر و لا تفویض بله امرون بین الامرین جبر و تفرید به این معنی گاهی به معنی اول دین معرفت الجبار و آخره او یا اول العلم معرفت الجبار و آخره او تفویض الامر الی این تفصیل غیر از اون اولیه است. حالا توضیح ارز میکنم جبر. آقا مثلا فرض به فرماید درس خوندم اونی که مربوط به شماست استعداد الحمدلله خدا داده اینو خدا داده من که به خودم اگه میتونم درس بخونم درس بفهمم و خدا منو جوری میافرید که مثل یه گاو بودم مثل یه درخت بودم مثل یه لیوان جماد بودم اینو خدا خواسته خدا منو اینجوری آفریده که بخوام درس بخونم میتونم خب الحمدلله خدا معلم گذاشته تو عالم کتاب گذاشته تو عالم امکان تعلیم و تعلم گذاشته به قول اون آقای صرفه هم میخواست که حرکتی هم بکن چهار قدم برو جلو دامن چهار تا استادم بگیر زانو در محضرش بزن حالا که اینجا میگه خدا خدایا استعداد دادی متشکرم معلم سر راهم قرار دادی ممنونم منم دارم تلاش خودمو میکنم ولی از من حرکت از تو برکت یعنی اینجا نمی نازم به سعیم اما نه اینکه سعی نکنم اینجا جبر میگم خدا همه کارا دست و اوس از امت الامور ترن به یده لا معصر فالوجود ایلالله این هفته درسته اما معنیش اینه که خدا بخواد بنده ده علامه دهر میشون من چرا کتاب بخونم چرا درس بخونم میگه نه باید سعی کنی لیسل انسان لا ما سعی خدا اینجوری نخواسته. خب سعی باید بکنم چشم. پس جبر نیست. که هیچی من در اونجا نقشی نداشته باشم، خدا خودش بی حساب و بی کتاب منو علامه در بکنه. نه من با زحمت اون بکشم. از اون طرف دارم زحمت میکشم تفسیر به این معنی ای آقا دیگه خدا چرا؟ گفتن که یه بنده خدایی از خونه رفت بیرون، گفتن کجا میری؟ گفتم میرم بازار یه الاغ بخرم. حالا اون زمان مرکز، مثل اینکه برای یه اتومبیل بخرم. دارم میرم اولاغ میخرم گفت بگو انشالله اگه خدا بخواد خب پل تو جیبم اولاغم که ماشالله فراواد اونی که کمه آدمه اولاغم که فرابانه خدا یکیشه میخرم دیگه خدا رحمت کنی شیخ بهایی رو <تصال> یکی دیوانه ای را گفت بشمار برای من همه دیوانگان را به گفتا کین کاریست مشکل شمارم خواهی فرزانگان را مردم شیخ میگی رو حالا با پول تو جیبم فراوان اولاغم تو بازار زیاد خوشو میخرم دیگه انشالله چی میخواد؟ تو راه که میرم پولشو زده. رفت تو بازار ای پوله نیست برگشت. تو خونه در زد خانمش در... کیه گفت منم انشالله رفته بودم علاق بخرم انشالله اگه پولمو ندزدیدن انشالله علاقه رو خریده بودم انشالله ولی اگه این دفعه پول پیدا کنم انشالله ندزنم انشالله میخرم می‌خرم این واقعیتیست ای ای واقعیت آقا جون تفیز به این منم که استعداد دارم منم که استاد خوب گیرم اومد منم که کتاب های آلی گیرم اومد منم که خدا گاهی رها میکنه که برو حالا که منی با من کاری نداری برو تا یه جوری میره که یه وقتی به خودش میاد یه وقتی هم تو همین دنیا چنان سرش رو به زمین میزنه من چیه؟ اینجا لا جبرا ولا تفیز به این معنی چیه؟ خدایا تنبلی به معنی جبر نیست؟ چش؟ من اقدامم رو میکنم همین معنی از تو حرکت اما خدای اگه تو عنایت نکنی اگه تو افاظه نکنی اگه تو دست منه نگیری همین استعدادم هم یه جور دیگه میشه معنای از تو عبودیت خالص من اخلت من اصعده الالله خالص عبادته جانم به فدایت زحرا سلام الله علیک داره به من یاد میده تو وظیفه خود رو انجام بده بندگی بکن خلوص در عبادت داشته باش احبت الله از احبت الله علیه افضل مسلحته تو این کار رو بکن او هم از اون طرف انایت شامل آل تو بکنه لذا رحمت رو به کتاب لغت مراجعه کنید این چند شب شاهد آوردم از آیاتی که شب اول بحث کردم و لذالک خلقهم یادتون میاد بحث شب اول اصلا خدا برای این شما رو خلق کرده که چی؟ لا يزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم بحث شب اول اصلا برای این خدا شما رو خلق کرد که امام صادق فرمود کاری بکنی مستوجب رحمتش بشی که اون رحمت به شما برسه خب همه این حرفایی که این چند شب داشتیم رحمت عامه که چه شما کاری بکنی که نکنی خدا به شما میده اما همه این حرفا در رحمت است. همه این حرفا در انایت ویژه است چرا خدا به بعضی‌ها میده به بعضیا نمیده اون بعضی‌هایی که می‌گیرند گر کدا کاهل بود صاحب خانه چیست اینو در از زهرا به من یاد میده میگه عبودیت خالص داشته باش تا بتونی بگیری خب حالا رحمت چیه بندی همه بحثا که وارد یک دو تا حدیث زیبا و یک حدیث تکنده انده که دیشب اشاره کردم نافله نوافل این امشب دیگه باید بخونم جامبندی کنیم ان شاء الله دقت در تمام کتب لغت شما مراجعه کنیم حتی لغت قرآن مثل مفردات راقه و دیگران و دیگران, و دیگران کتابایی که الفا میدونم من از همه اونا دارم ارج کنم تقریبا اشتراکی که همه صاحب لغت گفته رحمت رققه قلب برای توجه به موردی که عامل رققه قلب شده خب راجبه خدا میتونیم اینجوری معنی کنیم خب دقت بفرمایید رحمت رققه قلب یعنی دلسوزی برای اون عامر و انایت به اون عاملی که باعث رققه قلب شده مثلا شما تو خیابون دارید رد میشید یه بنده خدایی ناله میزنه گریه میکنه یا یک حالتی به خودش گرفته دل شما به درد میاد دل شما رقت رقیق میشه نرم میشه یه جوری میسوزه میگه آخه این بنده خدا الان این نیازو داره بهش توجه میکنید این توجه بر اثر رقت قلب اینو بهش میگن رحمت خب در حالت عادی بنده کنار خیابون نشستم خستم سایه گرفته میده اینجا نشستم شما هم تو خیابون رد میشید نهایت برخورد من شما چیه سلام علیکم علیکم سلام. حال شما چطوره خداحافظ اینجا زمینه رقت قلب و رحمت چه معنایی نیست اما من کنار خیابون افتادم پام شکسته دارم ناله میکنم شما کی چرا ناله میزنی؟ میگم افتادم پام شکسته میگه خب پس دستو بگیرم بیمارستان ببرم کاری بکنم این ناله من و اعلام نیاز من به شما در شما حالتی ایجاد میکند کند که دلتون به حال من میسوزه. این دل که به حال من میسوزه به من چه میکنی یه لطفی میکنید. اینو میگن رحمت رقت قلب و توجه اون اوناملی که باعث رقت قلب شده برای لطبه. خب در نحجل علاقه خطبهی صد و هفتاد و هست. امیر خدا رو داره برای ما ورز میکنه کممی. که نه با گوش، بسیری که نه با چشم. فرمود رحیمون خدا رحیمی است که لا برقه. نه اینکه رقت قلپ پیدا کن دل نداره، به این معنی من و شما که بخواد تحت تاثیر قرار بگیره. پس چیه رحمت ما خدا چی از جایی دونعلاقه می‌کنه ما؟ می‌فرمازد می بنده کاری می‌کند. که استحقاق لطف خدا پیدا کند چون خدا حکیمه میبینه شما ناله زدی استحقاق پیدا کردی اون ناله استحقاق پیدا نکرد این لطف رو میگن رحمت نه به معنی رقعت قل. چون رقعت قلب برای خدا معنا نداره اما نتیجه همونه به همین معنی که اون حکمت فیض رسانی خدا در مبنای درخواست شما ایجاب میکند به شما انایت بکنه این میشه رحمت حالا دقت بفرمایید وسائل و شی اجند پنج صفحه 237 است و و که پیغمبر میفرمایند جبرائیل شب نیمه شعبان بر من نازل شد تو پرانتز این رو به شما بگم چون به مناسبت حدیث دارم میگم مربوط به بحثم نیست لذا تو پرانتز شب نیمه شعبانی مکه مشرف بودم اتفاقا شب جمعه بود من خیلی دلم میخواست شب نیمه ای که شب جمعه باشه کنار کعبه باشم خدام این توفیق لطف کردی سالی خب دیدم شب مسکد الحرام قوغاست از بیتوته و مناجات حتی طبقه دوم و سومم بعضی بیتوته میکردن و مناجات داشتن غیر شیعه با و... با شیعه که منتقده هر دا جمعه من تعمدن تو نماز جمعه شرکت کردم ببینم خطیب چی میگه هتلی که ما بودیم یه هتلدار جوان معدب مصری داشت تحصیل کرده مصر بود مصری هم بود خوشفهم هم بود با هم رفیق شده بودیم گاهی گهده میکردیم اتفاقا توی مسجد حرام تو خطبه نماز جمعه دیدم بغلت رو من نشسته خطیب شروع کرد به نماز خطبه نماز جمعه رو خوندن حمله کرد به این افرادی که دیشب تو مسجد حرام بهیتوت می‌کردن کی گفته شب نیمه شما بیتوته کنید شب نیمه شعبان احترامی نداره اینا بدعته اینا رو دور این یعنی جمعیت بود که خطیب فردا دادش در اومده بود خطیب نماز جمعه این آقا بغلص من که با هم آشنا شده بودیم می کرد گفت تو کتابای ما همه داره شب نیمه شعبانم یکی از اون شباییکه که بود گرفت یعنی این جوان مصری حالا نزد دید شیعی، اگرم سنی بود میگفت ما هم کتابمون داریم، این چی داره میگه؟ نه خیر هست. حالا این در این که در حتی کتب غیر شیعه این حدیث است که یکی از اون شبایی که باد احیا گرفت، بیتوته کرد و از خدا خواست شب نیمه شعبانه. این حدیث هم حالا در این مورد پیغمبر پرمودن جبرایل بر من نازل شد و به شب نیمه شعبان مطالبی گفت الا قال رسید بیجو مطالب قبلا تو کتاب هست و من حالا بخوام بخونم طول میکشه کاری ندارم تا اینجا سعه يا محمد محمد بگیر شب نیمه رو ای پیغمبر این شب رو زنده زنددار شب زندهداری کن و مر امت که به احیاها به امتت امر کن این شب رو احیا بگیرن و تقرب به الله احیا بگیرن و قرب به خدا رو در این شب بخوان یعنی پس برای قرب به خدا ولی کارایی کرد ودی اعمالی انجام داد و تقرب الی الله بل عمل فیها فئن لیلت شریفه به امتت امر کن این شب رو شب زنده‌داری کنن با اعمال امشب قرب به خدا پیدا کنن حالا احادیث دیگه هم انتخاب کردم نه اینکه فقط با اعمال اون شب قربه به خدا پیدا کنید من جمله از عواملی که شما رو در این نرزبان بالا میبره اعمال شب نیمه شعبانه پس یک کارایی باید کرد اعمالی باید داشت شب شب, شب شریفیست قدرشو بدونید فروع کافی جلد یک صفحه صد و تحضیب شیخ جلد یک صفحه دیویست و چلو پنج مصباح المتحجد صفحه سد و نوود و وسائل پنج صفحه شست و سه امام صادق علیه السلام در آداب شب جمعه یکی از شبهایی هم که شب فضیلت، شب آشتیه با خدا شب برگشت و شب عرب به خدا پیدا کردن شب جمعه است این مدارکی که خوندم قالت صادق علیه السلام ان جمت حقا و جمعه حقی به گردن شما داره یه حرمتی داره و یا کم تو زیهاتقصثره فی ش من ادت الله و تقر رو به بل عمل و ترک المحارم شب جمعه حرمت داره جمعه حرمت داره. نکنه سایع کنی و کوتاهی کنی در مورد اون عباداتی که شما رو به قرب خدا میرسونه و اون اعمال صالحی که در شب جمعه و روز جمعه شما رو بالا میبره و ترک محارمی که در جمعه شما رو بالا میبره تو قرآن دقت کنید وقتی برادران حضرت یوسف قضیه رو شد و معلوم شد و می دونید از زمانی که حضرت یوسف از یعقوب جدا شد اون غذایا پیش آوردن ها روزی که یعقوب به یوسف رسید چقدر طول کشیده کی 80 سال 80 سال طول کشید این 80 سال حضرت یعقوب نالیده حالا افراری داره اینا بحثایی خیلی دلم یه وقت به این بحثام انشالله بپردازیم از خود و قرآن لره روایات بعد از این که قضایان رو شو برادران اومدن پیش این قرآن دارم میکنم میدونید برادران اومدن پیش یعقوب در از خدا بخواه که ما رو بیامرزه اینجا تو پرانتز این که وحابی میگن واسطه نمیخواد خودتون چرا اومدن به یعقوب گفتن تو از خدا بخواه ما رو بیامرزه خودشون میخواستن کما این که پیغمبر اسلام هم عجیبه من تو عربستان اینو با یه که از این آمرین به منکر و ناهین عنه معروف بحث میکردیم روز ذریع پیغمبر این آیه نوشته شده که برید پیش پیغمبر از پیغمبر بخواید که برای شما استغفار کنه گفتم این آیه چی میگاه قرآن هست یا نیست حالا که امر به معروفی یا به منکری میگه قرآن داره میگه حالا اومدن پیش یعقوب بابا جون از خدا بخوای که از ما بکشه ما بد کردیم پدر چی گفت سع استغفروا به زودی براتون استغفار میکنم همه مفسرین نوشتن چرا نفرمود الان سکه نیاد یعنی کمیال دست نگه دارید بعد همه نوشتم گفت صرف کنید شب جمعه برس شب جمعه در رحمت خدا بیشتر بازه اون شب من از خدا بخوام که شماها رو بیامرزه از گناه شما بگذره حالا اینجا میگه فا یاکن تو او تو غصر فی شیعن من ارادت الله و تقرب به بالعمل صالح و ترک المحارم شما رو باز میدارم و زایه نکنید. آخ خدا چه نخشهی برای ما کشیده. همین دیشب بود یه جوون عزیزی اگرم تو جلسه هست من حسنش دارم میگم، فکر نکنه. یه جوون عزیزی قبل از مغرب یه کمی اینجا با من صحبت می کرد. گفت فلانی مخوام خودم بگم من اینترنت تو خونمون اومد بیچاره شدم. حالا اراده ای که اینترنت نبینم ندارم چه بکنم عزیز من تعارف نداره جوانی که مملوب و شهوته جوانی که چند صد سال قبل سعدی به عنوان یک بحث تربیتی میگه پسر چون زهفت بر گذشتش سنین زنا محرمان گو فراتر نشین برای پنبه آتش نشاید فروخت تا چشم بر همزنی خانه سو نقشه کشیدن جوونهای ما را آلوده به شکم و شهوت بکنن عزیز من میدونی من چی گفتم گفتم میفهمی این کار بده میگه فهمیدم بعد بخش شدم گفتم اینه که میفهمی پس اراده کن اراده چیه وقتی که پدر مادر تو خونه هستن اینترنت ببین که برنامه های خوبش استفاده کنی خب تصمیم بگیریم و یه کاری بکنیم اینترنت یه جور مجلات کذایی یه جور حالا که هم دله فیلم های تلویزیون هم گاهی وقتا دسته کمی نداره. یه جور دیگر با که اون آقای امام جمعه کرد چندی قبل تو خودرو های نماز جمعهش گفت روزنامه نوشتن چندی قبل بودیم دو سال قبل بود. والله بعضی از این فیلم ها و بعضی از این خوندن های که تو رادیو تلویزیونه من مردی که ریشم سفیده رقصم میگیره. تا چه بررسید جوونا دیگه؟ تارف نداریم آقا یه واقعیتیه. بیاییم عواملی که ما را دور میکند، کند امان صادق میگه شب جمعه بیا برو در خونه خدا یک کارای اضافه تر انجام بده بذار رحمت خدا دست دستو بگیره ما که شب جمعه تا یک فیلمای خاص داره تلویزیون. شب جمعه که فردا تحتیلم خواهی اینترنتم. شب جمعه که فرداش تحتیلم با سیدی های کذایی ببینم. نتیجهش چی میشه؟ معنویت میمیره. دلها به گونه ای شده به خدا قسم گاهی وقت آدم میبینه به دیوار عرف بزنه بیشتر اثر داره تا به بعضی آدم ها اینقدر دل سنگ قصاوت قل به حدی رسیده گاهی نه منطق نه استدلال نه موعزه نه وض نه عزیزم جانم دلم نه تعدید نه تطمیم و چرا؟ دل دیگه دل نیست مرده؟ مثال فریشب یا دیشب یا بیاد. آقا باران که میباره باید این زمین رشد کنه ولی وقتی زمین من یه مقدار سیمان یه مقدار ماسه با کردم ریختم اینجا رو به صورت یه سیمان صف حالا هرچی باران میباره آقا زیرش بذر بود ولی این زمین صفت شد نکنه زمین دل ما قصابت پیدا کنه در مناجات عزت موساس مفصل اینا با تو محرم ازون خدا بخواد بشه حضرت موسی تو مناجاتش به خدا عرض کرد روایت از امام صادق راجبه این مطلب که حضرت موسی به خدا گفت خدایا از چی بیشتر از هر چی بترسم فرمود از اینکه دلت غصی بشه از اینکه دلت غصی بشه دل غصی دیگه منطق نمیپذیره یکی از عواملی که دل ما رو غصی میکنه فرار از عبادت یکی از عواملی که دل غصی میکنه خودخواهی است خالص عبادت برای همین گفتن خودخواهی گاری به جا میرسونه منطق میاری من یه وقتی گفتم یه جوونی اومد پیشم من هم بود گفتم خدایا کمکمون کن ما به کجا داریم میریم گفت راجی به این موضوع من اشکالی داره من یه کاغذ برداشتم جلوش با قلم خدا میدونه صادقانه میگم قلم برداشتم یه مقدمه‌ای توضیح دادم نتیجه رو کاغذ نوشتم گفتم این قبول گو بله مقدمه دوم توضیح دادم توضیح دادم نتیجهشو رو کاغذ نوشتم گفتم این قبول بله گفتم خواه. گفتی دیگه حاضر نیستم عرف بودم گفتم چرا؟ گفت چون اینجور که شما ادامه میدی به اون ای که شما میخوایی میرسه خدای من شاهد گفتم عزیز من این مقدماته که غلطی خب رد کن اگر قبوله به این نتیجه میرسه چرا قبول نمیکنی چون با منیتش سازگار نبود با جناحو داره دستش نمیساخت خب اینان قصابت دل انسان دل نرم. که میخواد رحمت خدا شامل حالش بشه حق پذیره. لذا ثواب و لعمال صفحه نبد و شش از آقامون امام رضا علیه و السلام یه قضیه برای از اسم امام رضا بردم بگم میدونم خوشتون میاد سه هفته قبل جایی بودم. یکی از دوستان خوب مشهدیم اومده بود اونجا گفت فلانی من تا حالا این قضیه رو برای شما نگفتم ولی دلم میخواد برات بگم برای خود من اتفاق افتادی این قضیه گفتم چیه گفت نامزد کردم این دوست ما الان هفتاد و خورده سالش من سن من انقدر نیست من دوستای موسنتر از خودم خیلی دارم الحمدلله دوستای کمسنتر از خودم هم خیلی دارم اشون هفتاد و خورده سالش گفت سی سالم بود که رو فقر نمیتونستم ازدواج کنم تو سی سالگی خانماما عبد کردم چه امکانات مالیم به قدری بد بود این آقا روحانی گفت ام امکانات مالیم به قدری بد بود که دو ماه اصن خونه مادرزنم زنم نرفتم روم نمیشد برم برای اینکه وضعم به گونه ای بود خب حالا این چیکار بعد از دو ماه تو صحن امام بودم مشهد برادر خانومم اتفاقا تو صحن امام به من رسید فلانی مادرم گله کرده گفتاخیشون چرا اصلا رفت و آمد نمیکنه چرا نمیاد نکنه میخواد خانمشو ببره مثلا خیال میکنه ما آمادگی نداریم از ما دلخوره اگه میخوای خانمتو ببری ما آماده ای گفت منو مثلا یک چیزی که حالیم نشود الان قد فقیرم که میخوام خونشون برم روم نمیشه یه دفعه گفتم خب باشه اگر هست من بیام مثلا گفت خب کی گفتیم روزی معین کردیم شد 6 روز دیگه گو خ خب پس ما آماده ایم شما مقدمات رو فراهم کن بیان خانم تو ببرید. گو ایشون رفت من تو سن چشمان به گمبت بود گفتم یا ما بزار من, من دیونش بودم اقل اون حالیم نبود ولی آقا ا رو رو یک کاری بکن که من حالا که گفتم سر شش روز من برم زنم و بیارم دیگه سی سالمه تا حالام که تو میدونی صبر کردم گناه نکردم اینا مهم ما. تو چون میدونی من گناه نکردم. حالا رفتم زن گرفتم خب مشکل مالی دارم اینجوری هم شده دیگه آبروی من نبر آقا چه بکنن گفت به حالم منقلب شد دیدم نمیتونم برم تو حرم درگشتم اومدم رفتم حجره م بشه. رفتم تو حجره گفت تو حجره رسیدم دیدم پرسی اومد یه نامه برای ما آورد آقای فلانی نامه رو برداشتم باز کردم دیدم تو نامه نوشته میری محله مشهد. فولان آدرس فلان مغازه فلانی این نامه رو بهش میدید. یک قرون او می گفت، اون موقع هزینه تا سیاب بود تا اونجا درشایی برم در شی برگردم در شایاب همسون ناایما یادشونه شایدیب اون ترا درشاه یادشون نباشه. گفت در شیواد می میدادم، برم در شایی برگردم حقیقتش همینم نداشتم پیادم راه زیاد بود. یکی از رفقا متوجه شد یک قون من اتوبوس موقع نبود تو مششه. گوه حالا اینه بگی برو گوه من گفتم حالا یک قرون ضرر میکنیم نهایتش بریم چی میشه رفتم به اون آدرس یه آقای پیرمرد نورانی دیدم مشغول کارش بود یه مغازه کوچولو داشت نامه رو دادم تا نامر گرفت و میدونی کی داده؟ گفتم نه هیچی نگفت نامر بوسید گذاشت کنار کناسالا من یک قرون برام مهم بود یه بسته استناس براور داد به من گفت مبلغ رو بیشتر آقا فرمون. ولی اینو شما ببر آدرسو رو بده بقیه شما بعد از ظهر بیارم الان صبح اینجا آماده نیست. من پول از شون گرفتم و اومدم رفتم حجرم آدرسم بهش داده بودم. بعد از ظورر اومد همون مقدار پول دیگم حالا من ماتو تو کیه؟ اینم داد به من. ما پا شدیم وسائل و خریدیم و رفتیم اونجا و خیلی هم با سربلندی پیش خانواده همسرمونو. عروسی گرفتیم خودم شب عروسی منبر رفتم و روزه مفصل امام رضا خوندم ولی این رضایه رو نگفتم خودش به من گفت به کسی تو حالا نگفتم ولی میخوام بهت بگم حالا چرا میخواست بگه نمیدونم گفت اون شب روزه مفصل امام رضا مخوندم حالا خودم میدونستم این روزه برای چیه این بین خود من رو امام رضا بود خانوم ما آوردیم بعد از یک سال خدا یه پسر به ما داد گفت همین پسر فلانی من که الان شما این پسر مریض شد. پن شش ماه به مریض شد که من و خانمم دیگه آجز شدیم دکتر بردم نسخه نوشت پول خرید دارو رو نداشتم روم نشد بچم دارو نخریده برگردم خونه پیش زنم بچه تو بغلم بود رفتم تو سحن مام رضا گفتم آقا جون مگه خودت برای من درست نکردی؟ شش ماه هم هست این بچه مریضه بعضی وقت بازی هم تحملم تحملم کردم این شش ماه دکترم بردم ولی دارو رو دیگه پولم ندارم بخرم خجالت میکشم برم خونه دیدم یه آقای زد پشتم گفت این پول رو گفت من عزت نفسی هم داشتم پول از کسی قبول نمیکردم گفتم نخیر آقا من گدا نیستم گفت این بقیه همون پول ازدواجی که برات داده بوده اون از امام رضا تشکر کن و بست هم دارو نخرد دیگه مریض نمیشه گفت پسرم سوال کن از وقتی که یادش میاد چشمای و بعدش من یادم. تا امروز هم مریض نشده بله آقا اینو همه کاری دستگاه خدا استعمار میخواد ما رو از اینا جدا کنه چرا یا علی میگی؟ چرا یا زهرا میگی؟ چرا نگم؟ خدایی که همه اون کاری که اونا تو دستگاه خدا کردن خدا هر چی به اونا بده جا داره به منو و تو میگه عبادت کن ببین چی بد میدم به من که خالص بیا تو در خانه من ببین چی به میدم؟ بحث چندشب به ما اونا چه کردن و خدا چه به اونا داده حالا این امام داره به ما چی میگه ما تقربه امام رضا میگه خدا میگوید ما تقربه الی المتقربون به مثل بکامن خشیتی کسی غور پیش من پیدا میکنه. مثل قربی که از خشیت من داره گریه می کنه پیش من یعنی بنده ای که از خشیت من گریه می کنه پیش من قربی پیدا میکنه که این قرب رو هر جایی نمیتونه پیدا کنه وقت زیغه شب آخره بعد ان به توسلات بپردازیم من اجازه بدیدی حدیثی که قول دادم اصول کافی جلد دوم صفحه 352 عربیش 352 حدیث شماره هفت سمع با عبدالله علیه السلام یه قال رسول الله شنیدم امام صادق فرمودن که پیغمبر چنین فرموده امام صادق مخصوصا غیب کردن اینو پیغمبر این گونه می ما تقرب علی عبدون بشیعن پیغمبر میگه خدا به من فرموده ما تقرب علی عبد به احب الی مما ترضى علی غربه به من پیدا نمیکند یا بنده ای یا عبدی با چیزی محبوبتر از از چه که من بر او واجب کردم پس اول واجبات این قرب فرائض میشه وقتی نمازشو میخونه روزهشو میگیره عبادات شخصیشو انجام میده، تخلف از عبادت نمیکنه، کنه. همین که می نماز می غربتن قربتن روزه میگیرم غربتن لله، اینا داره شما رو شما رو به خدا نزدیک میکنه. هرچی به خدا نزدیکتر شدی، آثار وجودی بیشتر میشه که جای خودش حالا و انه لیتقرب به بنافله خطا همین عبدی که با واجبات و فرایض داره به سوی من میاد قرب پیدا میکنه، قربی پیدا می کند با نافله تا اینکه که نافله مستحبات نماز شبی بخونه نماز قفلهی بخونه نافله صبحی نافله ظهر، اصلی نافله مقربی این کم از وادی واجبات پارا بگذار اون طرف در یعنی کاش خدایا حالا ما بیست و چهار ساعت شبان روز وقت داریم خوابمون خوراکمون کارمون تلاشمون زندگی و مون واقعا اگر بخوایم همه این پنجاب و چند زکت واجب و نافله رو با هم دیگه بخونیم دیگه دو ساعت یه ساعت و نیم بیشتر میشه دو ساعت از این 24 ساعت رو برای خدامون نگذاریم با خدا باشیم همه چیزمون از خداست تازه او چی گفته گفته تو این کار رو من بکنی من چی کارت میکنم حالا به کجاها میرسونم تو رو به سر در میاری؟ لذا امام صادق میفرماید پیغمبر فرمود خدا به من فرمود بنده من با فرائض واجبات غرب پیدا میکند و قربی که با نافله پیدا میکند حتی احب بهو این قرد به جایی میرسه من دوستدارش میشم یعنی بنده من میشه محبوب من من خدا دوستار بندم میشم بندم میشه محبوب من هر ضا حالا وقتی که من بنده رو دوست داشتم. کن توم اوه الذيسم بهی. گوشش من میشم یعنی اونجوری که من باید بشنوم او میشنوه. و بستر او الذي من میشم چشمش اونجوری که میخواد ببینه من عامل بینایی او میشم و لسان او الذي ینتقبه زبانش من میشم وقتی میخواد حرف بزنه. خودش هم نمی‌فهمی آقا باز کجا اومد بعد به خودش میگی خدا میدونه ما دیدیم افراد اینجوری تو بحث توی گفتگو توی مناظره حرفای میگرند بعد بهشون که آقا کجا بود میگم من نمیدونم شاید زبانم جاری شد اینم خدا دوستش داشته به زبانش گذاشته خدا دوستش داشته چشمشو باز کرده دیده حالا اگه من بگم علی ید الله علی لسان الله علی عین الله علی اذن الله مبالغه چرای علی کاری کرده است که خداوند آثار قدرت الهی را با ید و لسان و عین و اوزن علی به جهان داره نشون میده این مقام قرب الهی که امام صادق میگه پیغمبر فرمود هر کسی در راستای قرب الهی این عبودیت را داشته باشه خداوند این انایت رو در حق او میکنه و این فرموده یا مولای مولا من فاطمه زهرا سلام الله علیها من اسعد الى الله خالص عبادته کسی که خلوص عبادت بالا بده از ما چی میره بالا این حدیث قدسی خیلی جالبه خدا میفرماد بنده من وقتی به نماز میشتی اون جور حرف بزن که غیر از من خدایی نداری چون من اونجوری به تو نگاه میکنم انگار بنده دیگه ای ندارم این اینکه من که بنده دیگه دارم اما تو که خدای دیگه نداری چقدر قشنگه حرف خداست حالا من میگم خدا ولی اصلا کیف میکنه بنده دیگه من تو نماز جوری با من حرف بزن انگار خدای دیگه ای نداری فقط منم من اونجوری به تو نگاه میکنم که انگار بنده ای دیگه ندارم اما من که بنده دیگه دارم تو خدای دیگه نداری اما تویی که خدای دیگه نداری جوری با من حرف می جنی انگار که چندین خدای دیگه هم داری که این خدا نشد خدای دیگه اما من که این همه بنده دیگه دارم به تو اونجوری نگاه میکنم که انگار بنده دیگه ندارم حالا آدم با این خدا غر میکنه آدم با این خدا رابطه دوستی و عشق اشغال که دیشب گفتم برقرار نمیکنه اون وقت جانم به فدایت زهرا جان شب عروسیشه امیر در اتاق زهرا رو واکرد بیا تو زهرا گریه میکنه من مقیدم با سند از رو بخونم اما دیگه آلا این شب اجازه بدید سریع رد بشم تون تو ربال بحثم بنا نداشتم این رو بگم اشاره میکنم شاید قبلا این عبارت اینجا خونده باشه. امیر المؤمنین دید زهرا سلام علیه ها گریه میکنم زهرا جان گفت یا علی این که خونه بابام بوده خب من منتقل شدم اومدم اینجا خونه شما من ذهنم رو متوجه به انتقال از خونه شما به عالم قبر کرد دنیا این دیگه دارم تنتقل من دار الی یا ينتقل من دار دار بناس از این سرا به سرای دیگه بری از این خونه به خونه دیگه بری همین که از خونه بابام کنده شدم اومدم خونه شما ذهن من متوجه این کرد که از اینجا با کنده بشم برم یه خونه دیگه بیاد قبرم افتادم و شب اول قبر دارم گریه میکنم علی جان بیا به خاطر خدا این شب عبادت کنیم علی هم به گریه ایستاد گو زهرا جان بیا با هم عبادت کنیم این زهره که شب عروسیش خدا قیامت قبر نه این که مثلا آتفه آتفه شوهرداریش به گونه ایش که همین امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید به خدا قسم هر بار به چهره زهرا نگاه کردم سرور به قلبم آمد ولی نمیدونم این روزام که صورت کبود بودم اینجور بود شاید زهرام به همین جهت اون طرف صورتشو چو فوشون چون نمیخواست حضن به دل علی ببره لذا میگه این روزا از علی رو میگرف علامان و میگه منو عصبانی نکرد منو غذبناک نکرد کسانی که جز خدا براشون مطبع نیست خدامونا رو به جایی میرسونن که شما هرچی از اونا بخواید هیچ جای تعجب نداره انایتشون یکی از دوستان ما اتفاقا چندی قبلم به یه مناسبتی دیدم ایشون در کشورهای عربی سخندانی های خوبی داره موفقه در دفاعی از شیعه در کشورهای عربی عرب زبانه و خوبم هم منبرهای در سطح بالای جالبی داره بسیاری از این شباهات و هم تو مناطق عربی جواب میده ایشون فرمودن که بحرین منبر میرفتن چند سال که؟ یکی از وزرای کابینه بحرین شبه آشورا من خب بحرین هم شیعای ارسی دارا محکمی داره گفت به یکی منبر داشتم سرم هم شلو وزیر یکی از وزرای کابینه بحرین به من زنگ زد شب آشورا ما یه مجلس داریم تشمیرید مجلس ما فقط هم روزی از زهران میکنی تقییم نمیکنی نقش نخشف شیها دارن قوی میشن میخواد نوار بگیره بعد بسات و شیعه رو به هم دریزن اذیت شروع کنن گفتم آقا من منبرام پر شبای آشورات، توی بهرهید 8 تا 9 کجام 9 تا 10 کجام ده. قا کی آزاد میشه گفتم 12 گفت 12 منتظرش با دوستان مشورت کردم گفت خب نمیشد نرم بالاخره قدرت دست ایناست و اذیتمون میکنن گفت خب حالا میریم یه جوری با تقیه مثلا مجملي صحبت میکنید حالا زنده است خدا هم بده فرمودن که ساعت دوازده شب منبر تموم شد رفتن خیلی معدب مرتب مجلس قشنگ پرده کشیدن این مجالس ما خانوما اونور اون آقایون این وقت منبری هم گذاشتند سرش آورد در گوش من گفت تقییه نمی کنیم رو قشنگ من حقیقتش رو منبر نشستم گفتم این داره به من می که تقییه نکن من تقیه کنم هرچی میخواد بشه بشه شب آشورا روزی از زهرا خوندم تقییم نگه گریه یه هم کردن اینا از منبر اومدیم پایین گفت نخیل شام باید بخوریم شام شامم تو اون موقع منتظر مونده یک پذیرایی مفصلی هم کرد من ما تو مبهوتم خودش گفت خیلی تعجب میکنی نه گفتم بله گفت خلوت بشه بهت بگر خلوت شد بدرقه کرد من که بودم صدا زد پسر ایج در ساله ای داشت خسین بیام جوان خیلی محتم اومد همهش دم داشت چایی میداد صفره میذار بدی رایی میکرد گفت من سن نی اسم پسرم هم خالد بود دو سه ساله بود با این درهم های بهرینی که سکه های نغره قطور و بزرگیه داشت بازی میکرد خانمم زنگ زد به من توی کابینه این سکه تو گلوی بچه گیر کرده حالش بده بدو بیا. اومد این بچه رو بردیم بحرین. گفتن این به گونه ای گیر کرده شبیه چند سال قبل یه پاکون تو گلو یکی از این دختر خانم های اکبارگوایی که خفه هم کرد. این هیچ نظر طبی آقاین رفته با بهتر میدونن چیه؟ گفتن به مرور این جمع میشه این بچه خفه میشه با هواپمای اختصاصی رفتیم لندن تو بهترین بیمارستان لندن که برای این کار تباهور دارن بچه و چرا من و مادرش هم تو بیمارستان. اون مسئول اومد گفت که عمل جراحایی بکنیم. 5 درصد احتمال داره خوب بشه 95 درصد نمیره عمل جراحی هم نکنیم 100 درصد تا حالا چند وقت دیگه میمیره خب چه بکنیم؟ حالا من و مادرش خب یه دفعه مادرش برگشت به من گفت که مگه زهرا فقط دقمال شیعه است یا زهرا دختر پیغمبرم من هم هست ما که ما سلمونیم شیعه نیستیم بیا نظر کنیم اگر بچه ما شفا پیدا کرد ما شیعه بشیم هر سال شما آشورا برای حسینش مجلس ازام میزنیم برای روزه زهران بخونیم اسم بچه هم هم از خالد بر میدنیم و نمیزنم مدفه من و رو روبه مدینه استادیم تو انگلیس روبه قبله سلامی و ازداد زهران دادیم جاری شد. دیدم از تو بیمارستان میدوند میان گفتن چه کار کردید معجزه شد این سکه پرید بیرون یا زهرا ولی رسم شب آخر مجلس حضرت زهرا میرن در خانه باب و لبایی اجازه میخواد با کسی اجازه از محضر حضرت زهرا سلام الله برین سراغ این پسرش اول پس معنای مقام امامو فهمیده معنای ارتباط با اولیای الهی رو فهمیده یک عمری دست به سینه در مقابل امام حسین ایستاده یا سیدی یا مولای مطرح کرده حالا دیگه لحظات آخر تمام وظائفی که به اهدش بوده انجام داده تمام عمره سی و سالش هم که بیشتر نبود سیزده چارده سالش بود که باباش شهید شد از دنیا حدود 20 سال بعد از باباش زندگی کرده ده سال با برادر بزرگ شما مجتبا ده سالم با امام حسین علیه السلام تمام این 20 سالم چقدر مطیه وقتی که جنازه امام مجتبا رو تیرواران کردن خشم غمر بنی آشمی به ای گل کرده چشمان سرخ شده ولی چون امام حسین فرموده ساکت سکوت بدنه که به خاک سپرده، میخوام از همه شون اشارهی شده باشه. بدنه که به خاک سپردن دارم بر میگردن خانما تشی جنازه مکروی از خونه بیرون نیومدن پیشاپیش همه اول فض دوید اومد همین که به دهلیز خانه رسید زینب دوید جلو برادرم عباس. برادرم حسن و دفت کردی؟ کجا دف کردی؟ سر به دیوار نهاده باشن علامانوگه خواهرم دست از دل من بردار عباس زنده باشد جنازه پسر فاطمه رو تیر باران کنن اما عباس جن کن هنوز وقتش رسیده باید این تیر به چشم شما بخوره چرا؟ چون این چشم دوخته شده باسه لذا روز آشورا اون لحظات حساسه آخر عصر آشورا اومد خدمت امام حسین نکته زریفی اینجاست وقتی از امام حسین اجازه خواست بره بیرون میدان امام حسین علیه السلام همراهش اومد تقریبا تنها شهید کربلاست که وقتی از خیام حرکت کرد برای میدان جهت نبرد امام حسین با او اومد اول دوتایی با هم جنگیدن عمر صد تا میتونید بین این دو برادر جدایی بندسید یه ادهی از لشکریان امام حسین محاصره کردن به صورتی که تا در خیام برگردنن اول فضل علیه هم به هر زحمتی خودشو به شریعه فرات رسوند مشک فرا آب کرد چون امام فرموده بودن حالا که میخوای بری میدان آبی برای بچه ها بیار میخواد این پیام امام رو تا آخرین قطوه خونش عامل باشه تمام امیدش اینه که این مشک آب رو چگونه به خیمه برسونم، مشک انداخته رو کتبش همینجور داره نگاه میکنه از کدوم مسیر برم زودتر برسم امر امامم رو اطاعت کرده باشم یه وقت از پشت نخل خرمایی که قایم شده بودن شمشیری پروندن دست راست عباس جدا شد مشک به زمین افتاد نگفت دستم گفت مشکم چون مشک به از امر امام باید به خیمه بره فوری با دست چپ مشروب کتب چپ انداخت تیر چمشیری به کتب چپ خورد، دست چپ افتاد به دندان گره آیا میشه یه جوری مشروب خیمه ها برسونم اینجا میگن تیری آمد اول به مشک آب خورد. امید عباس دیگه شد چون دیگه دل خوشی نداره که برگرده اگر چه دست نداشت ولی مشک آب داشت دلش خوش بود که آب رو به خیام میرسونم اینجا دیگه لهن گفتار عباس ابد شد خدایا به لحظه‌ای که اول فز به این حالت در اومد امید دوستان ما رو در این جلسه امشب از اون چه که در خانه تو میخوان ناامید مفرما وقتی تیر به مشک آب خورد مش سرازیر شد دیدن عباس لعنه گفتارش عوض شد دیگه زمزمه ی عاشقانه با امام حسین داره سر میده اینجا بود که با عمود آهنین اول اومدن تیری به چشم عباس زدن این سر آورد پایین دو دوتا زانوهای مبارک رو کشید بالا به کمک دوتا زانو تیر از چشم بکشه تا سر و پایین آورد دشمن عمود آهنین را بر فرق مبارک عباس کو اینجا بود که از اسب زمین میافتاد افتاد که نداره هایل بدن کنه اینجا میگن فریاد زدی یا خواهد که اخا برادرم برادر تو دریاب میگن دیدیم ابی عبدالله چنان سرا سینه به طرف میدان میدوه میجنگه شمشیر میزنه دشمن متفرق میکنه اما خم شد از اصم اومد پایین خم شد هی hey, یه چیزی رو وردشته میبوسه و میبویه خدایا ورق قرآن زیر پا افتاده خوب نگاه کردیم دیدیم یه قلم شده اولفر رو حسین بردشته داره می‌بوسه و میبویه این یک دومت کنار بدن اولفر دست به کمرش گرفت، الان این که سر زهری و غلطی